أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعدائ الله إلى يوم الغائل الله إلهي هبلي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العدمة وتصير رواحنا معلقة بعز قدسك محمد وهل بيته صلواتك عليهم وعليهم در جلسه گذشته ما عرصه های تأثیر زیز فناوری بر معرفت و معیشت بشر معاصر رو اسباب موضوع شناسی فقه مهندسی ژنتیک عرض میکردیم و عرض شد که دست کم مهندسی جنیتیک با پانزده عرصه امروز مرتبط است و یکی از مهمترین مباحث و مسائلی که در فقه ژنتیک قهران باید مورد بحث قرار بگیره همین حیث است که باب عرصه هایی که فقه مهندسی ژنتیک با اونها درگیر هست انایت داشته باشیم و به این ترتیب با قلم رو و حوزه هایی که فقه مهندسی ژنتیک باید با اونها به پردازه آشنا بشیم شد که اولین عرصه ارس علم و این دانش و این فن آوری با ابعاد و زوایای گوناگون علم در روزگار ما سر و کار پیدا کرده دوم حوزه معرفت و حسب ادعا حوزه ذهن است و علوم شناختی و سوم حوزه الهیات و کلام است و بعضی پرسشها و یا شبهاتی رو که در حوزه عقاید دینی ماهنتزیس ژنتیک تولید کرده است حوزه چهارم این سه حوزه رو و عرصه رو بحث کردیم حوزه چهارم عرصه اخلاق است مهندس ژنتیک با اخلاق و ارزش‌های اخلاقی درگیر شده به تعبیری رابطه‌ای با مسائل اخلاقی و مباحث اخلاقی پیدا میکنه که بعضی از نکات رو از زاویه اخلاقی نسبت به مهندس ژنتیک ادعی مطرح می‌کنند و گاه گفته می شود که کار <تصفح> مهندسی ژنتیک در بسیاری از موارد عملی ضد اخلاقی است و بر اساس همین هم بعضی از ادیان اصحاب ادیان از ورود در حوزه مهندسی ژنتیک و فناوری نهی میکنند و میگن که کار غیر اخلاقی و ضد اخلاقی است نباید ورود کرد وحیانا شاید کسانی باشند که فتوا به تحریم مطلق ورود در مهندسی جنتیک و زیستفناوری میدهند میگویند که در حوزه ژنوم انسانی، حیوانی، نباتی در حوزه محیط زیست کارهای صورت میپذیرد که با اخلاق سازگار نیست. مثلا فرض کنید که وقتی در ژن انسانی تصرف میشود فرض بفرمایید که سلول بنیادی انسانی رو ما فراوری میکنیم و بر اساس فراینده های زیست فناورانه به تولد یک انسان منتهی میشه به اسطلاح استنساخ میکنیم نمونه سازی میکنیم مشابه سازی میکنیم فرزندی متولد میشه این علاوه بر احکام فقی که برش مترتب هست و پرسش های فقی که پیش رو قرار میگیره و بعدا به اونها اشاره خواهیم کرد جنبی اخلاقی هم داره این بچه که الان بر اساس زیستفن آوری و طی فرایند های به دنیا آمده در واقع گویی فاقد پدر و مادر است و فاقد خانواده است به هیچ خانواده و اسره تعلق نداره این که ما یک انسانی رو به صحه وجود بیاریم که فاقد خانواده باشد این با اخلاق برین الهی سازگار نیست با حیات تاییه که بنیاد آن بر نهاد خانواده است، سازگاری ندارد. دین انسان را زوج آفریده، تال انسان را زوج آفریده است. دین میگوید انسان زوج آفریده شده است. اعوذ بالله من شیر الرجیم به من آیاتی هی انخلق لكم من انفسكم از واجن تسکنو اليها و جعل بینکم مبدتن و رحمه از نشانه های از از آیات است که انسان ها رو زوج آفریده و زن و مردی با هم یک نهاد رو تشکیل میدهند به نام نهاد خانواده و زندگی الهی و حیات طیبه در گروه تشکیل نهاد خانواده است و بنیاد و اساس خانواده بر والدین است بر زوج و زوجه است مبتنی بر مرد و زن است و ما اینجا این مقوله رو از میان بر می و فرزندی متولد می شود که نه مهر مادر رو می و نه سایه پدر می بیند این خلاف اخلاق است که موچنون رفتاری رو میکنیم این در خصوص انسان در مورد حیوان هم شبیه همین احیانا اشکالات دیگری در موضوع گیاه هم در زیست هم تصرفاتی که در زیست میکنیم با اخلاق انسانی و الهی سازگار نیست و بسا خطراتی رو اونجا به وجود میاریم که هم جنبه اخلاقی دارد هم جنبه فقهی و حقوقی دارد مثلا این یکی از مثال است که نشون می دهد که مهندسی ژنتیک با اخلاق درگیر است و احیانا پاری پرسش های ارزشی و اخلاقی تولید میکنه و باید پاسخ پیدا کنه حوزه دیگه و عرصه دیگه عرصه قضا است مهندسی ژنتیک با عرصه غذا هم درگیر در با غذایی هم درگیر هست. ما وارد می شود مثال زده از جمله اینکه آیا از رهگذر گذر فرآیندهای زیست و مهندسی ژنتیک ما می امور و شعون رو پیش ببریم آیا میتوانیم به استناد دستاوردها و فرایندهای زیستفناوری فرایند دابرسی رو تنظیم کنیم و در مواردی به اسنادها و نتائجی که از له اعمال فرایند سیس فناوری به دست میاد تکیه کنیم اعتماد کنیم مثلا آیا می شود با دی ای, ای و به تعبیر عربی آن تغنیه یا تشیفرت ما هویت انسانی رو میتی رو تشخیص بدیم و قضاوت کنیم بر اون اساس اینکه با DNA یک فرد و تکنیک رمزگشایی از جسم یک فرد شناسایی رمز جسمانی یک انسان تشخیص بدیم که این جسد متعلق به فلول فرد است و بر اساس اون داوری کنیم و فرای آدرسی حول محور چنین تشخیصی به استناد چنین دلیلی احیانا صورت بپذیره یا جوارح و اعضای یک فرد مثلا در معرکه در میدان نورد اعضای کسانی قد شده و بر اساس آزمایش هایی که روی رمز جسمی و دی ای افراد صورت بپذیره حکم کنیم که مثلا این دست قطع شده از آن فلان بدن هست فلان فرد هست می شود آیا به دستاوردهای زیست فناورانه تمسک کرد در مقام دادرسی و غذایا یا نمی شود و امثال اینجور موارد هست که در از جنبه فقهی در آینده به فروع مرتبط با اون اشاره خواهیم کرد به این ترتیب مهندسی ژنتیک با قضا نیست با شمون قضایی هم درگیر می شود بر اساس این آیا مثلا می شود نسب رو اثبات کرد احراض کرد با استشهاد و تمسک به دساوردها و پیاوردهای فرایندهای زیز فرانورانه ما نسب رو مشخص بکنیم و بر اساس مثلا در مورد ارث قضاوت کنیم یا نمیشود. ارسه ششم با ستو ارسل رو روزه گذشته جلسه گذشته ارس کردویم دومرت هم اسو ششمین ارسه که زیست شناوری با اون درگیر میشه با مندز ژنتیک مرتبط می شود به اون ارسه ارسه اجتماعی است در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگ تمدن در این ها هم مندز ژنتیک در واقع تأثیرگذار است و از جمله های تاثیر مهندسی ژنتیک عرصه سبک زندگی، عرصه فرهنگ، عرصه تمدن و امور و شعون اجتماعی است. به حال پیامدها و دستاوردهای زیست فناوری و مهندسی ژنتیک بسیاری از ساحات حیات انسانی رو و شعون بنیادین حیات بشر رو فرام می پوشه. و اگر با روندی که زیست و مهندس ژنتیک آغاز کرده و طی می و روز افزون شتاب میگیرد این روند پیش برود سبک زندگی بشر تغییر خواهد کرد اساسا تغییر بنیادین و اساسی روی سبک زندگی رو خواهد داد و به نظر میرسه که وقتی سبک زندگی تغییر کنه و مرحله به اصطلاح اشتدادی و کمالی تغییر سبک زندگی پیدایش یک تمدن که از انباشته شدن تغییرات در سبک زندگی میتواند پدید بیاد این رو همینجا عرض میکنم که ما معتقدیم جوهر تمدن سبک زندگی است و تمدن ها در طول تاریخ در حقیقت بانی سبک زندگی های و حیاتیه و عیشیه گناگون و متفاوتی بودند و جوهر تمدن صنعت و فنعاولی نیست جوهر تمدن علوم نیستند جوهر تمدن حتی احیانا مباشرتا و رأسن و اولا به نظامات اجتماعی نیستن بلکه همه اینها مقدمما برای پیدایش تمدن برای پدید آمدن یک سبک زندگی متفاوت و خاص آنگاه که سبک زندگی جدیدی به وجود میاد تمدن جدیدی شکل گرفته است در واقع قانون و گرانگاه تمدن هر تمدنی سبک زندگی است که او پدید آورده است و با پیدایش سبک زندگی خاص و جدیدی، تمدن خاص و جدیدی هم ظهور میکنه و پدید آمده و محقق شده و به فعلیت رسیده است. فرآیندهایی که در زیست فناوری در ارسای مختلف اتفاق میفته و دستاوردهایی که از اونها حاصل میشه زندگی آدمی رو و همه ابعاد و عرصه های زندگی انسان معاصر رو تأثیر قرار میده و رفته رفته این تغییرات به حدی انباشته میشود که به کلی سبک زندگی بشر رو تغییر میده و به این ترتیب تمدن دی بنیاد گذاشته میشه با این توضیح در واقع وقتی جوهر زندگی که همون سبک زندگی تغییر میکنه جلد و قالبش هم تغییر میکنه وقتی قلب تغییر میکنه قالب تغییر میکنه وقتی جوهر عوض میشه جلد هم عوض میشه و به این ترتیب تمدن جدیدی به وجود میاد که بسا از او به تمدن بیولوژیک و بیولوژیکی و الحضارت البیولوژیه بتونیم تعبیر کنیم این هم باز یک تبین از رابطه مهندسی ژنتیک با یک از وجود و عرصه های مهم و اون عرصه اجتماع و مسائل شؤون امور و شؤون است. هفتمین عرصه ای که مهندسی ژنتیک با اون پیوند میخوره، حوزه بهداشت و درمان است که این خب برای همه معلوم و روشن است حالا آشنایی و آگاهی داریم از تاثیر مهندسی ژنتیک بر این عرصه در حال میدونیم که سهم و نقش بسیار پررنگ جرف و بلکه شگرف و شگفتی مهندسی ژنتیک و زیست در قلمرو به بهداشت و درمان داره. چون که میدانید و اشاره هم شد، مثلا می شود فر انسانی رو به عرصه وجود آورد متولد کرد با استنساخ و با است رح تولد بدون نکاح و نطفه از شیوه استنساخ و مشابه سازی همانند سازی انسانی رو یا حیوانی رو به وجود ورد گیاهی رو پدید آورد که فاقد ظاهرا پدر و مادر و والدین است در انسان و حیوان تا این حد زیستفناوری در حوزه پزشکی نخشافرین و تاثیر است و همکنون هم این موارد در دنیا و در کشور خودمون تجربه شده ما با فراوری سلول های بنیادین به طور مکرر دانشمندانمون حیواناتی رو پدید آوردند یا همون مسئله شیفرت الوراثیه دین دی ای مسئله بسیار بسیار مهم است و کارکردهای بسیاری در قلم پزشکی پیدا کرده از این مسئله و با فراوری ها و دستگاری ها و با لقاهات و تلفیقات و تعبیری تعدیلات ما به نمونه های جدیدی از موجودات دست پیدا میکنیم. از زهرگذر طب زیست فناورانه و طی فرایند بیولوژیک بیوتکنولوژی ماگاه به تشخیص امراض، به درمان امراض، امراضی که در گذشته لا علاج بوده امروز دست پیدا کردیم و امروزه که یک نظریه جدیدی در حوزه پزشکی مطرح شده به نام معالجه شخصی به این معنا که اصولاً افراد حسب اون رمز اختصاصی جسمانیشون دی ای خصوصاتی دارند و هر فردی خصوصیات خود رو دارد از هر هیسی و از هر جهتی از جمله در حوزه بیماری و درمان در نتیجه درمان دقیق آن است که هر شخصی رو از اون هیسی که اون شخص است مورد مطالعه قرار بدیم و درمان اختصاصی اون فرد رو تجویز کنیم. میگن به مثل علاج شخصی، یعنی طب پیشرفته و پزشکی آینده میره به سمت اینکه اصولا طبابت و بهداشت و درمان کاملا شخصی و فردی بشود. اینجور نیست که بگیم اگر حتی بیماری شایع می شود و در یک جامعه ای می شود فراگیر می شود. ما یک نسخه برای همه آهاد اون جامعه بپیچیم و یک نوع دارو و دستور بهداشت و درمانی صادر کنیم و مشخص کنیم بلکه حتی در بیماری های فراگیر اجتماعی که آهاد یک جامعه با اون درگیر میشن هم باید شخص به شخص و فرد به فرد آهاد اون جامعه مورد مطالعه قرار بگیرند و برون یکی که اونها نسخه جداگانه و متفاوت ناظر و ناشی از مختصات وجودی او بپیچیم چرا که عوامل گناگونی بر بیمار شدن و فرایند تیمین بیماری و روش و روند طی دوران درمان تأثیر داره و در نتیجه هر شخصی وضعیت خاص خودش رو دارد خب در این جور موارد مند ژنتیک در حوزه سلامت در حوزه بهداشت و درمان حضور پیدا میکنه و یکی از اره که مانتز ژنتیک در اون حضور پررنگ دارد همین حوزه بهداشت و درمان و به او حوزه داروست که هشتمین عرصه عرصه‌ی داروسازی از سیدالت الحیویه‌ داروسازی زیست فناورانه. به هر حال باز این قسمت هم از جمله بخش‌های به شدت درگیر با مهندسی ژنتیک از امروز یعنی با اعمال و استفاده فرایندهای زیست فناورانه داروهای تولید می شود. داروسازی امروزه در صد ای از داروسازی تحت تاثیر فرایندهای زیست فناورانه صورت بپنده البته این تازگی نداره و در گذشته دور در طول تاریخ بشر با صورت ساده و اولیه زیستفناوری آشنا بوده و یکی از عرصه که از دیرباز تحت تأثیر فراینده زیستفناوری ولو اشکال اولیه و ساده یا آن بوده است همین صنعت و حوزه و عرصه دارسازی بوده امروز خوب. بر اثر پیشرفت مونتسیری ژنتیک ما به فنون و فرایندها و فرمولهای بسیار فراوانی دست پیدا کردیم که با اعمال اونها داروسازی توسعه پیدا کرد داروهای جدید کشف شده و ساخته شده و این حوزه به شدت و شتاب در حال گسترش است و روزفزون داروسازی عزیز فناورانه داره بحث پیدا میکنه این هم یک قلم رو که قهران هم به صلاح به لحاظ علمی هم به لحاظ پزشکی و هم به لحاظ اخلاقی هم به جهات و به لحاظ فقهی میتونه محل بحث باشد نهمین ارسعه ارسه‌ی کشت و زراعت است در زمینه درختان و گیاهان و محیط کشت تکنولوژی حیوی و مهندسی ژنتیک در زمینه گیاهان و نباتات، درختان و گیاهان خوب از دیرباز هم به کار گرفته می شده در قالب و صورت های ساده و سنتی خودش امروز این زمینه بسیار وسیع شده و چون که شد یکی از چهار بخش تقسیم رائج تکنولوژی حیویه خضرا زیست فناوری سبز است در حوزه نباتی، غذایی، دارویی، محیط زیست و امثال این ها این موضوع درگیر هست و توجیهات و توضیحاتی هم احل فن در این زمینه ارائه میکنن و جزء علل اساسی توسعه و تعمیق و تکثیر زیست زیستفناوری همین به صلاح زاویه میدانند و این عرصه میدانند چرا که میگویند که بر اثر افزایش جمعیت کره زمین کره خاکی ما با منابع محدودی رو می شویم منابع مثلا قضایی در کره خاکی بسیار محدود است و منابع اولیه موجود اگر در اونها دستکاری نکنیم و اگر زیست فناوری رو در اون کار نبندیم پاسخگوی نیاز قضایی و دارویی آهاد انسانی نیست کره ای که روزی همه جمعیتش مثلا چند صد میلیون بوده امروز از هفت میلیارد فراتر رفته و پیش بینی می شود که در دهه پنجاه این قرن قرن میلادی در سال 2050 جمعیت کره زمین حدود 20 میلیارد نفر بشود و میگویند که ما اگر فرایند های زیست فناورانه رو وارد عرصه زراعت و حوزه سبز نکنیم ما دچار مشکل تغذیه این جمعیت آور و عظیم خواهیم شد ولذا باید به این موضوع بپردازیم و با اعمال و کاربست فرایندهای فناورانه به تولید درخت و گیاه و به باراوری و بازپروری اون و احیانا بالا بردن بازدهی درختان و گیاهان و تولید میوه‌ی بسیار دست پیدا کنیم که بتونیم پاسخ نیاز جمعیت روبه به تزاید جهان باشیم فارق از اینکه این نظریه درست یا درست نیست که محل تأمل چنین نظریه‌ای و خداوند حسب حکمت خودش منابع لازم بلکه کافی رو برای تقضیه و تأمین بشری که بر زمین به وجود میاد رو لحاظ داشته و ملحوظ فرموده است و این بشر باید این منابع رو کشف کنه و عملا هم در طول تاریخ این حقیقت به اثبات رسیده است که بشر هرچه پیش رفته و جمعیت هرچه افزونتر شده هیچگاه دچار کسری از لحاظ منابع نشده و اگر هم بشود به این جهت است که در صدد بر نیامده که منابع ناشناخته رو کشف کنه. اما در این حال این یک نظریه است که ما برای جبران این کسری باید به اعمال فرایندهای زیست فرانورانه در حوزه زراعت و درختان و گیاهان و زمین بپردازیم. باز در خصوص محیط زیست در وقت پیوند مهندسی ژنتیک به حوزه محیط زیست هم در زیل همین بخش قابل تر هست هرچند که میتوان رابطه زیست فناوری و مهندس ژنتیک با محیط زیست رو به مسابه یک عرصه مستقل هم لحاظ کرد ولی هم برای حفاظت از محیط زیست و عناصر و اقلام محیط زیستی و زیست بوم در زمین و احیاناً آفتزدائی و تقریت و ارتقاء محیط زیست از فرایندهای زیستانوبران استفاده کرد چون که مخالفین کاربست فرایندهای زیست فناورانه میگویند که بعضی از این فرایندها موجب تخریب محیط زیست خواهد شد بر حال از دو جهت حوزه سبز و عرصه سبز با مسئله مهندسی ژنتیک و زیست فناوری درگیر هست از دو زاویه میتوان راجع به او بحث کرد ها و ضررها مواهب و مخاطرات در هر حال این هم از یکی از زمینه بسیار بسیار مهم و پرهمیت موضوع مهندس ژنتیک هست که احکام اخلاقی و فقیه بسیاری رو تولید میکنی یکی از چالشگاه ها و یکی از میادین تولید نظرات فقی مخالف و موافق همین عرصه است الان به سرعت بخش های بزرگی از زمین زیر کشت میرود تحت تأثیر و بر اساس فرایندهای زیست فناورانه آنچنان که گاهی بعضی از آمارها میگوید که تا کنون شاید چیزی حدود 120 میلیون هکتار بر اساس بعضی از که در بعضی مقالات من دیدم 20 میلیون هکتار از اراضی زیر کشت به شیوه های زیست رفته در حالی که یکی از داده‌ها و دستاورده های این است که نیاز انسان رو به استفاده از زمین بیشتر پایین میاره و از زمین کوچک میتوان محصول فراوان به دست آورد. اما در این حال اقلام بزرگی از عراضی زیر کشت تحت زیر کشت شیوه های زیست فناورانه و فرایند های زیست فناورانه می روید قلم رو و دهم ده به بخشی از این مسئله در عرصه قبلی مسئله زراعت و زیست فناوری نباتی اشاره کردیم چرا که بخش مهمی از تولید غذا از طریق طی فرایندهایی و امروز فرایندهای زیست فرآورانه در محصولات زراعی به دست میاد در تکثیر در واقع مواد غذایی و تنوع بخشیدن به مواد غذایی بالا بردن کیفیت آن و خصوصیات اون مهندسی ژنتیک بسیار نقشاافیده و البته همطور که عرض شد خود همین نقطه یکی از نقاط پرچالش مخالفین و موافقین زیست فناوری و مهندسی ژنتیک هست چرا که احتمال ضرر در مصرف فراورده‌های حاصل است اعمال فرایندهای زیست فناورانه بسیار بالاست و احیانا اگر خود فرد هم از ضرر محتمل پیشگیری کنه مثلا فرض کنید تولید کنه و صادر کنه و دیگری بفروشه خب احتمال اضرار اینجا مطرح می شود که احکام اخلاقی و حقی خاص خودش رو دارد که باید در موقع مناسب به اون بپردازیم چون که با کاربست اساليب و فرایندهای فناورانه در قلمرو دارو هم همین مسائل مطرح میشه یازدهمین ارسه محیط زیست است که از کردیم به صورت مستقل قابل بحث و قابل طرح است و به اون زیل مورد دهم اشاره کردیم دوازدهمین عرصه عرصه صنعت در حوزه صنعت زیست فناوری و ماندس ژنتیک امروز بسیار بسیار نقش پررنگی داره بعضی از سازمان های جهانی و مراکز بین‌المللی نهادهای بین‌المللی گاهی بعضی از برآورده ها و پیش بینی ها رو میکنند که فوق العاده اگر نظر مثبت داشته باشیم نسبت به مقوله مهندس ژنتیک این پیش بینی ها دلگرم کننده است و آینده روشنی رو نوید میده و اگر مخالف باشیم این پیش بینی ها بسیار بسیار نگران کننده است در حال گفته می شود که مهندسی ژنتیک در قلمرو صنعت به حدی توسعه پیدا میکنه که انقریب اگر پنج صنعت بزرگ رو در میان صنایع اصری و معاصر به عنوان برترین ها و گسترده ترین ها بخوایم نام ببریم یکی از اونها مهندسی ژنتیک خواهد بود اجهد اینکه که ها و زمینه های این فنعاوری و نیز دستاوردها و فراورده که اعمال این فنعاوری پدید می آورد و در دسترس بشر قرار می دهد. کمیت بزرگ و حجم وسیع از صنایع سنا... رو تشکیل خواهد داد و خب این فرایند فراینده زیست فناوری در قلمرو صنعت و کلا صنعت زیست, زیست فناورانه این میتواند منتهی به تولید صنایع خطرناک احان بشود و در حوزه سلامت انسان، در قلمرو سلامت محیط زیست، در حوزه امنیت بشر، در حوزه مسائل نظامی و راهانداختن جنگ های بیولوژیک، در این زمینه ها بسیار میتونه خطرساز باشه توسعه این فن آوری و صنایع مرتبط و مترتب بر آن این هم واسه یک قسم و بخش مهم یک عرصه مهم در زمینه ارتباط مهندسی ژنتیک با عرصه های گوناگون بله از که ارتباطمون قرض شد لحظاتی وارد پوزش بله به حال ما در زمینه تاثیرات نشر و شگرف مندسی ژنتیک در های گوناگون از جمله از جنبه صنعت و در زمینه صنعت با هم تهدیدات و تحدیات و احیانا هم با دستاوردها و های احیانا مناسب و مثبت مواجه هستیم و این قهرن احکام فقی خاصی پیدا میکن که باید مورد بررسی قرار بگیرم سیزدهمین همین ص اقتصاد و تجارت موضوع بسیار بسیار امروز تعیین کننده شده و. مسئله زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در اقتصاد معاصر اقتصاد بشر کنونی و در مناسبات تجاری جایگاه خاصی پیدا کرده است چون که گاهی بعضی از گزارش ها حاکه آن است که مثلا محصولات و های تجاری حاصل از اعمال فرایند های و مهندسی ژنتیک تا سال 2024 تا چهار سال دیگه به 7000 دویست و, هفتاد و یک میلیارد دلار خواهد رسید و بخش بزرگی از تجارت جهانی رو به خود اختصاص خواهد داد به طوری که بعضی کشورها صرفاً از طریق اعمال فرآیندهای زیست و تولید فرآورده‌های ناشی از مهندسی ژنتیک اقتصادشون رو اداره می‌کنند گاهی بعضی کشورهای بسیار کوچک در زمره کشورهای نسبتاً ثروتمند قرار می‌گیرند بر اساس تولیدات ناشی از اعمال مهندسی ژنتیک و استفاده از مهندسی ژنتیک مثلا از باب مثال عرض می‌کنم هلند که کشور کوچکی است هلند لحاظ مساحت بنزی دو سوم خوزستان ایران کشوری است فاقد خاچ کسانی که اونجا سفر کردن دیدند که از اینجا اونجا خاک تهیه میکنند و یا از کشور کوچک خودشون از نقاطی که ممکنه خاک منتقل میکنند و آرام آرام سواهل رو تبدیل میکنن به زمین و خاک منتقل میکنن خاک ریزی میکنن زیرساخت ایجاد میکنن و زمین درست میکنند برای کشت خب یا همچین کشوری که به لحاظ مساحت بسیار کوچک است به لحاظ ماده اولیه کشاورزی بسیار فقیر است که خاک ماده اولیه کشاورزی است ولی سالانه حدود 80 میلیارد دلار یعنی بیش از دو برابر فروش نفت ما در شرایط عادی و 16 برابر صادرات کشاورزی ما اونها مثلا سیب زمینی صادر میکنند محصول فرآورده های به صلاح از فرآورده های کشاورزی ما صادراتمون در مجموع در حوزه کشاورزی 5 میلیارد دلار است حسب آمارها و اونها 80 میلیارد دلار 16 برابر ما صادرات دارند این رو عمدتاً از راه گذر استفاده از مهندزی ژنتیک به دست فارغ از اینکه اصل ریز فناوری صحیح است صحیح نیست بذر رسم مفید است غذاها و چالش‌هایی که در این زمینه وجود داره ولی به هر حال این دهنده این است که مهندسی ژنتیک در حوزه تجارت و اقتصاد بشر نقش فوق العاده و تعیین کننده‌ای بر عهده گرفته و کشورهای کوچیکی دارن از این گذر تبدیل به کشورهای ثروتمند می شوند و بلکه در این مسابقه عظیمی که در جهان آغاز شده اگر بعضی کشورها از این امکان و ظرفیت بهره نگیرند به اصطلاح در این مسابقه بازنده خواهند بود امریکا در این حوزه الان رتبه اول رو داره 96 میلیارد دلار در زمینه فناوری ها و فرآورد های به اصللا مهندزی ژنتیک صادرات داره و چین رتبه دوم رو داره و البته فاصلش با آمریکا زیاده ولی چین با یک خیز شتاب آلودی داره حرکت میکنه که بسا ان به تونه امیلیکا پوشت سر بگذاره خب به هر حال قدرت ها دارن از این امکان و از این ظرفیت استفاده میکنن برای تقویت اقتصادشون و برای رو بخشیدن به تجارتشون پس برای این این مسئله میشود مسئله بشر و فقه باید احکامون رو بیان کنه یکی از عرصه ها عرصه بس برای این مهندس جینتیک و ربط آن با اقتصاد و تجارت است چهار ده همین عرصه که باید از اون نام ببریم میدان امنیته حوزه امنیته عرصه امنیته مسئله مهندسی ژنتیک در حوزه امنیت از اهمیت فوق العاده فوق فوق العاده این روز برخوردار شده اصولاً مسئله زیست فناوری داره تبدیل میشه به مسئله اول امنیت بشر و سرویس های جاسوسی امروز سرقت ژنها و سرقت اطلاعات مربوط به ژن اقوام کشورهای مختلف یکی از میدان های وسیع عمل سیرویز های است و اکنون امریکایی ها و رژیم سهینستی روی ژن جن اقوام ایرانی به شدت دارند کار میکنند و متاسفانه بعضی اطلاعات در این زمین ها فاش میشه و به دست اونها میرسه و اونها میتوانند با افزایش اطلاعات چون در زمینه جن های ایرانی و جن هریک از اقوام ایرانی و احیانا خصوصیات زیستی و دین افراد علیه کشور ما علیه ملت ما توتعه کنند و این در جنگ بیولوژیک کاربرد فوق ای داره و از این جهت این مسئله مسئله امنیتی بسیار مهم می شده من الان چون جلسه درس بعضی از مثال ها رو نمیتونم بزنم مثال که تعجم انسان رو بر انگیزه همونطوری که سرویس های جاسوسی در این زمینه به شدت فعال شدن دقت و مراقبت ها هم از ناهیه کشورهای مختلف در خصوص مثلا مقاماتشون در خصوص اقوام تشکیل دهنده ترکیب جمعیتی کشورشون هم فعالیت ها و افزایش پیدا کرده مراقبت و فعالیت های ششمکری رو انجام می دهند در حال یکی دیگر از ارساها و ارسای مهم ارسای مهندس ژنتیک و ارسای امنیت هست مهندس ژنتیک و امنیت رابطی مهندس ژنتیک با امنیت هست ارسای دیگر ارسای نظامی است حوزه تولیدات نظامی و عرصه جنگ بیولوژیک هست این عرصه, عرصه بسیار گسترده است ما شاید زمانی که برسیم به مبحث فقیه مربوط به جنگ بیولوژیک اونجا بیشتر توضیح بدیم ابعاد و ساحات و سطوح و لای فراوانی دارد این مسئله. و چون که قبلا هم اشاره کردیم موضوع نقش مهندسی ژنتیک در نظامی و جنگ به نحوی دارد تبدیل میشه به مهمترین مسئله قدرت ها و جنگ بیولوژیک امروزه به پیشرفته ترین اسلوب و شیوه نظامگری بدل شده و هرچند که گفتیم جنگ شناختی یک شیوه و سبک و وادی است که داره پیش روی بشر گشوده میشه ولی هنوز هم چنان و در آینده به جهت خصوصیاتی که این اسلوب نظامی دارد در آینده هم توسعه خواهد یافت به جهت اینکه من الان خیلی در خصوص این مسئله مجال نیست توضیح بیشتر بدم چون که از باید توضیح بیشتری بدیم ولی از می‌کنم که به جهت خصوصیاتی که این اسلوب و سبک نظامگری و سلاح بیولوژیک دارند بسا تا قرنها این سبک و سلاحهای های مربوط به اون بیبدیل قلم داد بشوند جای و جایگزین ناپذیر به شمار بیان و پس بر این یکی از عرصه ها و زمینه ها زمینه به اصطلاح جنگ بیولوژیک و تولید های بیولوژیک است این 15 عرصه است که مهندسی ژنتیک با اونها درگیره و قهرن مسائل فقهی فراوانی معطوف به هر یک از این عرصه ها قابل طرح و مطرح شده است و باید در فقه مونوجنتیک به پاس اونها بپردازیم زمان سفری شد امروز دستمون می‌داره طولانی شد من پوزش ها هستم و انشاءالله جلسه آینده نسبت مهندسه جنیتیک با فقه رو توضیح میدیم که 16 همین عرصه و آنگاه به روش دستیابی به فروع فقهیه و تبویب این قسم از فقه انشاءالله خواهیم پرداخت و اون رو مرده و بررسی قرار خواهیم داد و یک الگویی رو برای ساختاربندی مباحث فقه مهندسی ژنتیک ارائه خواهیم داد و صلی الله علی محمد و قیبین و القاهرین